یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود دل چو از پیر خرب نقل معانی می کرد عشق می به شرف آنچه برو مشکل بود آه از آن جور و تطاول که در این دام دامگه هست آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم خمه می دیدم خون در دل و پا در گل بود بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراغ مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود راستی خاتم فیروزه بو اسعاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود دیدیان قهقهه کبک خرامان حافظ که زی سرپنجه شاهین قضا قافل بود